زندگی ائمه عليه السلام رو که دیویست سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیاد. یک انسان دیویست و ساله از هم جدا نیستن کلهم نورون واحد دوره مدینه فصل دوم دوران 23 ساله رسالت پیغمبر است 13 سال در مکه فصل اول بود که مقدمه این فصل دوم محسوب می شود و 10 سال هم تقریبا 10 سال تمام شاید یکی دو روز کمتر از 10 سال دوران مدینه پیغمبر است که دوران شاندریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانها و دوران های تاریخ انسان و همه مکان این الگو البته یک الگوی کامل است مثل او را ما دیگر در هیچ دورانی شراف نداریم هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این است که مبارزه کند با محیط ظالمانه و تاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اون روز در سر سر دنیا حاکم بود هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود مسئله مسئله جهانی بود جهانی بود هدف این بود که بذر اندیشه و عقیده را پیامبر اکرم بپاشد هر کجایی که زمینه مساعد بود در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد هدف این بود که پیام آزادی انسان و پیام بیداری انسان و پیام خوشبختی انسان به همه دلها برسد این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نیست لذا پیغمبر به مدینه آمدند برای این که این نظام نمونه را به وجود بیاورد وارد مدینه شد تا این نظام را سرعپا کند اون را کامل کند و برای عبد در تاریخ اون را به عنوان نمونه نگه داره تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت توانه مثل او را به وجود بیاره و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی اون چنان جامعهی We'll be right